این قبلن خدا بر عرش مسلط نبود نه آسمان زمان و زمین و داریم بله قبلا شی نبوده این تسلط خداوند بر آسمان و زمین بر اش کنایه از تصرف در اونها و تدبیرشونه ولی زب پشتش میگه امر تدبیر میکنه امور رو و الله خدایی که میگه که نهنا اقربا الهیه من حبل الورید من از اگه گردن اگر رو عرش نشستی کجا پس از اجرای گردن به ما نزدیک تری چجوری جمع میکنین بین این دوتا آیه؟ پس ملائک هایی که مثلا قبض رو میکنند آیه به همین رد داره کدام؟ نه این آیه نه اون آیه که شما دارین میگین آیه دیگه ایست این تو سوره قافه خب همینم خلقن الانسان برد. و نعلم ما توسل شبهي نفسه و, و نحن اقرب اليك خب من حبل الابديه اي آيه میگه اذ يتلقا المتلقيان ان الذين على الشارقه بعده من این آیه رو میگم خب تفسیرش بعد آيه بعدشه. ان همینو میگه میگه خب چه شي يعني ميخاين اونجا که میگه ما از رگ گردن نزدیکترین به شما فرشته ها نزديكن خدا نیست؟ خدا دوره بحث مكانيي خب اينجا بس مكاني فرشته است كه انسان پس اینجا که خدا میگه ما خلق کردیم شما رو و ما نزدیکتریم یعنی فرشتگان خلق کردن شما رو و از رای گردن به شما نزدیکتر هم اینجا همین. پس ما مخلوق فرشته ها هستیم اینکه این این نه اینو که نمیگم <تصفيق> آه پس چی؟ میگه نهنا خلقنا کن نهنا خلقنا لانسان نهنا خلقنا و بعد می‌فرماید به از گردن گرنن نزدیک‌تری پس باید اون قسمت اولش هم فرشته‌ها باشند خب، در ادامه که میگه ادامه, و الهی ادامه که یک قیدی واسش می‌ذاره یا طلق قلب یعنی بس دو تا بابا، اون وزکر در تقدیره این همه ازقاله را بکنی، وزکر ازقاله را بکن، وزکر در تقدیره یعنی بیادار اون زمانی رو که فرشته‌ها، اون رفتی به صفت خدا نداره که قبلش راجع به خودش داره میگه اون یه موضوع دیگه است. ولی هر چیز رو بخوایم با از بعدش از کام مربوط بکنیم چه بس خیلی نامربوط میشه اون یه از مثلا یه طلق قد ما اون به اصطلاح از اونجا ظرف فعل مقدر قبلش ما پس ما باید عدبیات دادم درست بدونه که اینا رو درست بتونه تفسیر بکنیم اونجا خدا داره از خودش میگه. لقد خلق نال انسان. و نعلم ما توسوس به این نفس و نهنه اقرب الیه من هزن. اگر ما بگیم نهنه اقرب الیه من فرشته ها هستن خدا نیست پس لغت انسان هم فرشته ها هستن فرشته است که انسان ها رو خلق کرده فرشته است که از وسوسه خبر داره فرشته است که از راه گردن پس ما مخلوق فرشته ها هستیم باید اونها رو تسبیح بکنیم حمد عبادت بکنیم مخلوق اونها هست میگه اونها ما رو خلق کردن اینا یا اون آیه دوم که شما میگید میگه فلاولا اذا بلغت الحلقوم وقتی که جان به گلوگاه میرسه و انتم هینا اذن تنظرون شما ایستادی تا دیدین اون معتذر رو نگاه میکنین و نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا رو ما از شما به اون مرده نزدیکتریم اما شما ما رو نمیبینید ما اونجا هستیم از اونم ولی شما نمیبینید ولکن لا رو وقتی خدا از خودش میگه نمیشه که خدا هر که از خودش میگه بگیم مراد فرشته است هیچ واسه اگه اینطور باشه هر جو خدا از خودش صحبت کنه میگیم خدا نیست فرشته از ما فرشته پرست بشیم بس شکته. اینجاست که اینجا قرینه ای در خب لحظه که انسان معتزل میشه ملائکه‌ای که مثلا واسه قبض روح میان درگیر میشن با اون انسان این منافات نداره درگیری است اینجا نم. که میان برای قبض رو مدام اینجا از علمش به اون محتضر داره صحبت میکنه نه برگریش برگیریش میگه میفرماید که و نه اقربا الهه من کن ولکن لا توبسرون ما نزدیکتریم یعنی به حال و آگاهتریم از شما و ما اونجا هستیم ولکن لا توبسرون اما شما نمیبینیم اگر خدا نبود اونجا رو عرش بود لکن لا توبسرون چیه شما ما شما نمی بیدید ما ما اونجا حضور داریم اصلا که خدا به موسان بگید برید با بزنید یه این نمی معا اما بعداً بعدا بلافظه میهی اسما و ارا اصلا نمیگیم من ذاتن. صفاد خودشو بعداً تفسیر میگویم جوری با شما هستم میبینم و میشنمم اما تبینید اینجا اصلا معیت منظوری که خدا به اونها هست یا نیست نیست اینجا مندییت این یعنی من ناصر شما هستم یار شما هستم متجهه اینجا اصلا صحبت معیت که خدا اونجا باشون هست یا نیست موش منتفیه اینجا خدام فقط برید من با شما به کمکتون میکنم می میکنم یاری تون می کنم کنم که باقول شما اصلا و ارام می بینم شما را هم ارکان میشنم صحلتون رو ولی این معیت اونجا که عرض کنم که لا تحسن ان الله هم معنا که رسول خدا با ابوبکت صلاح و سلام به ابو عشق رضی اللهم هم گفتن که قصن خور خدا با ماست منظور این خدا ما را تأیید میکنه خدا یار ماست متوجهیم؟ بله بنابراین اونجا اصلا موضوع این که خدا اونجا حضور داره یا نیست؟ نیست اونجا موضوع یاری خداست معیت کاری به معنی نصرته یاریه یعنی خداون یار ماست ما را نجات میده از اینجا ما پیروز خواهیم شد داشته دلداری ولی و هوالله فستماوات و فلعز یعلم و سر رکن و جهر رکن. این دو قسمته اول اثبات میکنه هم در آسمان و زمین هست هم میدانه وقت در صورت که اگر ما این رو ارز کنم که بگیم به معنی فقط میدانه است نصف آیه رو انکار کردیم هوالله فستماوات و فلعز هوالله هست که در آسمان و در زمین صرف تفسیر آلی دیگه جز میگه یا علم و سر با جه خدا اله هست در آسمان و در زمین خدا کلمه <تصفيق> اله با الله فرم الله بابا <تصفيق> شما این علم... تفسیر آیه با, با آیه نه, این نه. این بعدم... تفسیر آیه با آیه بعد وحدت موضوعی داشته باشه یعنی موضوعش یکی باشه شما اله با الله یکی میگیری الله علمیت داره علف الام برسرش افتاده آمده همزش مثلا حذف شده و الله رو بر کسی دیگه نمیشه اطلاق کرد ولی الاهو خدا خود خدا اطلاق کرده میگه الاهو هوا. کسی که اله خودش هوای خودش کرد میگه خدا در آسمان زمین الهه یعنی معبوده در زمینم هم عبادتش میکنن پرشتگان در آسمان هم عبادتش میکنن متوجه بله این درسته ولی اون الله رو داره میگه اگر گفته بود اله به معنی معبود او الله لا فستماوات و فلعرض یعلم و سر و جه راكم. این یعلم و و جه تفریع بر حضور خدا در و زمین یعنی او چون همه جا هست میدان آشکار و نهان شما رو حالا واسه این کلمه استقا شما رو معنی لغتی شاو درسته بله خب در مقابل کسانی هم که به حقیقی بودن اسما صفت اسمانی است اسما صفت اسان متواصل میشه به معنی لغوی دوباره یعنی جای تعویل هست اینجا جای تعویل برای هر دو طرف بازه که مثلا چون لغت عرب قابل هم ده همش میکنه معنی رو من تعجب میکنم هم شما به معنی لغوی متواصل میشین هم اونایی که خواهد به معنی حقیقی اسما صفت اسان ولی داخل ببینید اینجا قضیه این است که قرآن یه است که باید در تفسیرش همه آیاتشو مجموعا نسبت به یه موضوع در نظر داشت اگه یکیشو بگیریم یکیشو نگیریم دوچار اشتباه میشه خدا از یه طرف بگه که من در عرش مستقرم عرش فوق آسبان هاست یعنی خیلی دور حتی نسبت به زمین از یه طرف بگه که من از که گردن به شما نزدیک‌ترم اون مورد منتظر که داره می‌بینه من اونجا حضور دارم ولی شما منو نمی‌بینید خب این چه معنی داره پس بعد بگیم هم در هر هم در زمینه هم در آسمانه همه‌جا چون همینه میگن میگن خدا که نه مخلوق نه نه نه نیست محدودیت مکانی داشته باشه ما به اونا میگن علمش اینجاست خودش می‌گه خب همینو میگن آفره. عفاری همینو می‌خواستم بگم خب خب حالا من سوال میکنم میگن علم قدرتش اینجاست من که علم قدرت خدا از خدا جداست علمش درواز غزبینه اینجا علمش درواز غزبینه خودش در دیلانه الان اصلا, اصلا تشبیه نباشه برای خدا مثلا خورشید ندار کنید نور حرارتش به ما میرسه اما لزومی اینه که خود خورشید در کنار ما باشه علتش این است که اون نور از خورشید تولید میشه متوجه ولی خدا لم یلد و لم یلد چیزی ازش در نمیاد اینطوری علم و علم خدا من باستان تشبیه نمیبنم نمی نمیکنم ولی کرده. یه مثال نه یه مثال هم با یه مخلوق خدا رو تشخیص کردی این نه. نمیشه من یه که زمنی... زنیت... تو... توضیح میدم دوباره خورشید خودش دریجاست ولی نور و انرژیشو میفشه به برای اینکه زایش از او میشه میفته ولی اگر بگیم که خدای تعالی تالا یار یه جای است مثلا به اسم عرش ولی قدرتش اینجا آمده قدرت که مثل نور نیست که از ذات خدا زایش بکنه قدرت صفت ذاتی خداست پس اگه قدرت خدا همه جا هست خدا همه هم جا هست برای خدا از قدرتش جدا نیست اینطوری نیست که خدا در گیلان باشه قدرتش در آذربایجان باشه هر جا قدرت خدا هست ذات خدا هست چون صفت ذاتی خداست قبول داری که خود... بشه. نه اینکه خدا علم داره به چیزایی که اتفاق میفتب ما ها ببینین ما یه جا نشستیم علممون ممکنه بره امریکا چرا؟ برای اینکه به وسیله ابزار، به وسیله دوربین به وسیله فلان علم پیدا میکنی ولی علم و قدرت ذاتی خداست یعنی هر جا ذات خدا هست اون علم هم هست هر جا اون علم هست ذات خدا هست شما که قبول دارید که چند صفت صفت ذاتی خداست بین صفت فعل و صفت ذات تفاوت میذاری یا نه بگیم علم خدا مثلا به ما علم داره خدا به ما علم داره یعنی که علمش از این جدا شده آ، اون متعلق علمش ما هستیم خدا قبل دیم که ما رو خلق کنه به ما علم داشته اگه حالا علم تازه پیدا کردیم به ما خب موقع که ما نبودیم باز در علم خدا بودیم حالا هم که هستیم در علم خدا هستیم علم که از خدا جدا نمیشه تعلقش به اشیا به صدا تجدیل میشه يعنی متابق علم خدا ما ظهور پیدا میکنیم. علم خدا علم قبلیه تازه که علم پیدا نکرده که خدای تعالی علم قبلیه قبلن هم که ما نبودیم به همه چیز خدا علم داشت و آگاه بوده اینطوره یا قدرت خدا رو در نظر بگیم قدرت خدا اینجاست خودش قذبینه یعنی چه مگه قدرت خدا از خدا جدا میشه حالا علم رو تصور میکنی مثلا میره به یه دستهی میرسه قدرت که در ذاتش باید باشه اگه در ذاتش نباشه برای مخلوق که, که خودمون تصور داریم آره همچین چیزی رو گذاشتیم. باید مخلوق قدرتش، علمش با خودش باشه تا رو کاری بکنه اما برای خدا نه. خدا خالقه خدا خدا با این که مثلا خدا ببین یه اشتباهی اون این اشتباه این است که قدرت خود مخلوق رو از ذاتش میدنی ولی قدرت خالق رو پایین تر از مخلوق گرفتی اینجا نه بالاتر میگی که قدرتش رفته همین فرسخت دیگه خودش اینجا گرفته نشسته پس این دمگرد ولَم یولَد چی میشه مگه از خدا چیزی زایش پیدا بکنه چیزی استنباط میشه از حرف ما که بگیم از خدا جدا میشه خب همین وقتی که شما میگه قدرتش یه جای دیگه است نه چیزی نگفتید ببینید قبلا قبلا که این مخلوق رو بخواد خلق بکنه قدرتش کجا بوده سرجاش بوده دیگه حالا او... که مخلوق خلق کرده قدرتش سفر کرده به هندوستان اونی که خدا میگه مثلا بخواد چیزی رو خلق بکنه اصلا با یک فرمان هم با گفتن بکن لازم نیست قدرتش پرواز کنه بره اونجا چی گفته پرواز آفرین پس شما میگی که مال ما قدرتش در ذات خودمونه ما رو خدا در ذاتش نیست نه. پس خدا ذاتاً بی نه. نه گفتم حالا این محدودیت برای مخلوق شما که... نیست تصور بکنید که هر چی که ما داریم خدا غیر از اون داره به اشتباه میفتی نه مثلا ما میخواستم این قرار بر این باشه ما وجود داریم خداوند هم وجود نه نه نه خدا وجود نداره اینکه لایسک هم اسلایک چرا اتفاقا همینا وارده وجود خدا ازلیه اما وجود ما وابسته به یک سلبیه قسمنا بر این بوج... اصل وجود اونم داره من کیفیت وجود اون ازلیه ما حادثیم بله مم. و الا اصل وجودم نه اصل وجودم ما با اون فرق داریم. پس او وجود نداره نمیشه که خدای تعالی قدرتش ذاتیه به دلیل اینکه قبل از اینکه موجودات خلق بشن اون قدرت رو در ذاتش داشته بعد از ذاتش هم بیرون نیمده چیزی جدا نشده مخصوصا جدای مکانی که شما تصور دارید چون میگه قدرتش اونجاست خودش رو عرشه این میشه مکانی چون میگه علمش اونجاست خودش در عرشه این میشه مکانی من, من آها سخنمو تایید کنم اینجوری گفتن که خدا طرف یاه همین حقی در دره نه خدا بس شما نیست ان شاء الله شما اینطوری نباشید نه حالا من میگم خدا مثلا رو عرشه علمش به تمام هستی هست نه اینکه علمش از خودش جدا میشه کنار من میشینه نه خدا علم داره به اینکه من چی میگم چکار میکنم پس شما قبول کردید که علم خدا از ذاتش خارج نیست هیچ کسی نمیکنه هیچ کسی هم, هم چیزی نمیکنه همه قدرتش چی قدرتش آفرین پس اومدی سر حرف من واسه بسین ندارین منم میگم اما ذاتش خود... نه مؤثری ذاتش اینجا شما قبول کردید که قدرت خدا از ذاتش بیرون نیست پس وقتی که میگه قدرت من همه جا هست، ذاتش هم همه جا هست. نه. تموشه دیگه. لیاقت نکنه. نه، آقا. نکن. وقتی ند. وقتی که میگه من قبول کردی که قدرت دوست خدا مثلا... و علم خدا از ذات خدا بیرون نیست. خدا بسای که خدا شما... ذات است. بعد بنابراین وقتی که میگه علم من همه جا هست، قدرت من همه جا هست، ذاتش هم همه جا هست، چون ذاتش و علمش جدا نیست. چیزی که خودتون میفرمایید اما میشه که خداوند خب با... این میشه شما داری با یه مخلوقی علا خدا رو نه باید نه اتفاقا بررکس میخوام مثلا شبه... اصلا منظرش کن از این شبیه خدا تعالی پیدا کردی که حالا میگیم میشه اونطوری اینطوری بشه نه تصوری میکنیم ها تصور راجع به خدا من خدا, خدا اینجوریه مخلوق. اما مخلوق اینجوری نیست خب ما برای نوخ این که مثلا بتونه میگه که بدیله رو جا کنه اینکه میگه خدا اینجوریه از ام. کجا اینو میگی مگه خدا رو پیدا کردین بر اساس آیاتی که در آیت قرآن مدینه آیه قرآن میگه مکان یدم ایدو... گفت میگه که اونجا که مرد معتزره من اونجا حاضرم اما شما من رو نمیبینید شما آیه رو تعویل می‌کنید مثل باز سوال اون چطور معنی میده بله خدا چطور معنا میکنه شما عرش که یه جای معینی است همون میشه منتها خداوند من حاکمه بر اونه مسلطه بر اونه فوق... نگرفته نشسته برای, اینکه پشن... برای چیه برای نشسته حالا تحبیر... من نمیگین خدا نشسته اصلا نمیدونیم چجوری استفاب پیدا کرده اونجا خواب... اینش رو اصلا نمی‌دونیم. یه سآل ازت میکنم شما که میگین من در ذات خدا هیچ اطلاعات ندارم از کجا میدونین که چشم خدا همون علمش باشه. را احتمال شده شما که نمیدونم خدا چیه چجوریه چطور چی از کجا می‌بینی؟ شاید دست خدا هم قدرتش باشه. از کجا می‌بینی؟ مصداقشو که نمی‌تونی تعیین بکنی. نه، ما نگفتیم. گفتیم این اینجایی که مثلا خدا به خودش نسبت میده دو دستو یه چیزی دیگه غیر از علم. چیزی دیگه ای براش تبیل نکردیم. ما بگیم مثلا اگه نداری قرآنو با قرآن میشه تفسیر چرا؟ کرد. چرا؟ پس خداوند وقتی میگه بین دو دست من نیفتید یعنی چی؟ لا تو قدمون بینا یدی الله یدی الله بوده یدین نون تانی در حال اضافه هست شده قال خودتون قرینه داره آیه درسته قریناش کدومه قرینه میگم مثلا پیغمبرن اضافه میکنه خب میگه خل... پیغمبر اضافه مگر مه... دست نداره نه چرا میخوام میخوام همین رو میگه جلو دست پیغمبر نری خب اینجا اینجا جایی رو از پیغمبر نیافتید دیگه بله رسول پیغمبر بوده یعنی جلو نرید از پیغمبر به خوش سر پیغمبر واسید اصلا مشخصه که همچین منظوری نداره آیه چرا درسته؟ مشخصه؟ اصلا مشخصه مشغله ظاهری هستی یعنی نه ما که ظاهری نیست اصلا شخصی مثل ابن تیمیه نمیاد چرا ایت واقعا ما که مقلد ابن تیمیه نه مثلا میخوام خوام استدلالشو بگم میدونم می دونم هم می درست گفته هم گفته. مثلا اصلا قائل به ثبیه نبود اگه من من اگر آقا بین دو دست خدا و دو دست رسول نیاد خدا دو تا دست داره رسولش هم دو تا دست داشته دست ظاهری محنه آیم واضحه یعنی جلوی دست های پیغمبر ندید یعنی جلوتر از پیغمبر ندید پشت سرش بله خب امک در مورد خدا چه بکنیم؟ اگه بگیم این دو دست ظاهریه جلوی دو دست ظاهره خدا را نیفتی بری پشت سر خدا واسی آقا اصلا مشخصه جایی که مثلا به خدا دست داده میشه دست مثلا به شیطان میگه چرا سجده نمی کنی به آدمی که من با دو دست خودم اصلا اگه بحث قدرت بود بحث دوباره ببین شما میگی که اونجا که خدا گفته که آسمان را خلق کردن با دست مزور با قدرته اینجا که میگه شیطانو خلق کرده با دستش منظور دست خود. نه دیگه <تصفيق> چطور وقتی که آسمان صحبت خلقت آسمانه میگه در مقام قدرت اونجا منظور با قدرته ولی بحث خلقت شیطانی که بشه اینو با دست هم. همین دستایی که مثلا ما داریم خدا با اونطوری خلقه این چیزیه که مثلا علمای بزرگی بزرگ ابن تیمیه گفتن من نم نمیخوام, نمیخوام دفاع کنم. علامهای بزرگ حاجا نمیخوام دفاع کنم از ابن نمیخوام حقیقی غیر, غیر از بحث تقریری نمیخوام دفاع کنم. بنده میتونم بگم زعفرانی عالم, عالم بزرگی بود اونطوری گفته. خاصن حرفمون بزنم تکیه روش کنم که اینکه کل آیات رو مجازه نمیگیرن. و یا نمی حقیقا نمیگیرن ابن تیمیه. مثلا امثالشون. کل آیات الاسم و که راجبه اعضاء همون دیگه. حاضر مثل اینکه به اعیانه متوجه متوجهی اینکه به اعیانه تصور کردن که خداون مثلا بیس هزار تا چشم داره اینطوری با اون بیس هزار تا چشم داره پیغمبر. یعنی تو تحت نظر ما هستی از علم ما از حفاظت ما از نظارت ما بیرون نیستی عرب اینو میفهمیده مثلا به دوستش میگفته عرض کم که اینکه علا عین الله برو اذهب اینکه علا عین الله یعنی برو حفاظت خدا دادید خدا حفظت بکن عین الله علیک نگاه کتاب های لغت رو مثلا فائق زمخشری نگاه کنین حتی المنجد رو نگاه کنین میگه عرب به دیگری میگه که از حفظ عین الله علیک یعنی حفظ الله برو جسم خدا بر تو باشه یعنی خدا دائم بر تو حافظ باشه ناظر باشه حفظت بکنین کسی نگفته به این معانیم نیومده اومده منو یه روقت عرب اصلا هم داشت کرده و چیزی معمولیه در که جدل در کتاب خدا نه شده ما بیشتر از این دیگه وقت شما و خودمان حالا شما یه بیشتر تعمل کنه چه بری یاد بیار بنده ما رو که دارای دستان بود خود دستان هم دیگه. اون دیگه حالا جمع گفته لاود داود چه تا دست چیش هم, هم ما دیدیم هفت همگوشتی هم. شاید اون سه تا دست داشتیم هیچ قرینه هم نداریم ولی تمام مفصلیم گفتن بابا یعنی بیاد یار بنده ما داود رو که بود از کام اینجا منظور این نیست که دو تا یا سه تا دست داشت کفار هم دست داشتن این که نمیشه خداوند در مقام تجلیله و همین حرف خدا درباره خودش بزنه قسم میگه هل ه سلطنت یک کار یه چیزی نیست که تو دست خدا باشه به يد هلمونک به او على كل شيء سلطنت در دست خداست سلطنت یه چیزی که تو دست خداست نه سلطنت یک کاری است که خدا حاکم فرمان و فرمانروای به يد هلمولک منظور این نیست که دست داره تو دستش سلطنت رو قایم کرده اینطوریه وقت اینجا رو ناچاره میگیم یعنی در قدرت او. وقت اونجا که میگه که آسمان زمین در قبضه منه اونجای میگه نه خدا اینطوری کرده زمین گرفته در مشتقالش میگه داشته با این هم مثل به دهل مالی که دیگه چطور اونجا معنی مجاز میگیری اونجا نمیگیری؟ با اوکه تجار با ایلا تجار به تو جر میده مالمن نمیده این شکافه همه از صد اسلام تاره افتن القرآن قرآن رو به از اون قرآن رو با هم دیگه تفسیر کن